جمعه ها عشق به دیگری ابزاری است برای زیبا و زیباتر ساختن زندگی آنها که سوگنامه‌های عاشقانه میسازند، نویسندگانند و اهل قلم و آنها که عشق را مستمسکی میکنند برای پنهان داشتن ناتوانی‌های خیش درمانده و بیمارند اشق به میهن و ملت ابزاری است برای وصول به آزادی، ادالت و صلح پایدار در سراسر جهان. آنها که عشق به میهن و ملت خود را دستاویزی می کنند برای تجاوز به حقوق ملت‌ها و سرزمین‌های دیگران دیوانگانی هستند بایسته زنجیرهای گران یا شایسته شفا. عشق به خدا ابزاری است برای تسکیه نفس و تعالی بخشیدن به روح آنها که عشق به خدا را یقینا اشتباهی پیش آمده است انسان در هفته به دو روز تعطیل نیازمند است اما به دلیل کوتاهی کاهلی کمکاری یا بیش خواهی نتوانسته است به این تعطیلی قطعا لازم و منطقی دست یابد. انسان مسلما در هفته به دو روز تعطیل محتاج است. روز نخست برای آنکه به کوه و دشت و بیابان بزند، هوایی بخورد، بدود، بازی کند، آزاد باشد، ورزش کند، خود را در متن طبیعت بکوبد و خمیر کند و از نو بسازد. روز دوم برای آنکه به خانه برسد و به همه خرد مسائلی که آنها را در طول هفته به جمعه حواله داده است و استراحت کردن و خفتن و کاهلی کردن و خستگی های روز نخوص را از تن در کردن این دو روز را به هیچ وجه نمی شود در هم ادغام کرد نمی شود به یک روز تبدیل کرد و انسان اگر بخواهد از حداقل سلامت و نشاط برخوردار باشد نمی تواند از یکی از این دو روز چشم پوشی کند ما اگر در همان یک روز تعطیل سر به کوه و بیابان بگذاریم یا به دشت و جنگل برویم بازی کنیم و بچه ها را بازی بدهیم و به نشات آوریم و واقعا به یک روز تفریح سالم سازنده دست بیابیم باید که شبانگاه کوفته و له شده به خانه بازگردیم ولو شویم بخوابیم و صبح روز شنبه کسل خسته ناتوان از فعالیت درست سازنده سر کار برویم. و به همین دلیل است که شنبه ها بسیاری از آدمهای شهری، عصبی، دلگیر، ترشروی، خمار، خسته، کم تحمل و نامهربان هستند. و اگر بخواهیم در همان یک روز تعطیل خود را در خانه حبس کنیم، و به کل کارهای خانگی برسیم دیگر چه فرصتی برای گردش و تفریح و به نشات آوردن روح و جبران سخت کاری های هفته باقی میماند. و در این صورت اصلا چرا باید زنده مان تا به چنین مصیبتی گرفتار آمد؟ شش روز کار و یک روز در قفص برای آماده کردن خیش برای کار؟ این درست است واقعا؟ تو میپرسی؟ راستی انسان کار میکند برای آنکه به آسایش دست یابد یا قدری می آسایت فقط به خاطر آنکه توانایی کار کردن داشته باشد انسان وسیله ای است برای دوام بخشیدن به کارها یا کار ابزاری است برای ایجاد آسایش انسان ما در خدمت کاریم یا کار در خدمت ماست آخر چه خاصیت که تو پیوسته با تمامی شور و حال و عاتفت؟ از عشق و معنویت سخن بگویی اما ما برده کارهای روزمره زندگیمان باشیم مگر تو نمیگویی که عظمت و نیک بختی انسان در مجموعه ای از روزمرگی هاست این شادمانی و عظمت چگونه نصیب کارگر یا آموزگاری خواهد شد که تمام هفته از طلوع تا قروب چرخها را میچرخاند و جمعه آن هم اگر ای داشته باشد نه شوار در گوشه‌ای می افتد تا بتواند باز تمام هفته چرخا را بچرخاند میگویم چرا میخواهی که بیش از این در یک برنامه هفتگی عاشقانه آرام در باب موضوعی چنین سرد و آزارنده بحث کنیم بحث است ما به دو روز تعطیل در هفته نیازمندیم و به هر قیمتی که باشد این دو روز را به دست می آوریم پنج شنبه ها برای بیرون خانه، جمعه ها برای درون. پنج شنبه ها برای کوفته کردن شادمانه خیش، جمعه ها برای رفع شادمانه کوفتگی ها. مادر آقای مددی و خانم کتابدار به هم میخورند؟ نه. خب معلوم است که نمیخورند. خانم کتابدار خیلی از آقای مددی سر است. ولی آقای مددی خانم کتابدار را میخواهد. حسن کچل هم دختر پادشاه چین را می‌خواست، ولی حسن کچل انقدر دوید تا رسید پس آقای مددی هم انقدر بدود تا برسد آخر اینجا شکل قضیه کمی فرق می کند خانوم کتابدار هم آقای مددی را می خواهد. خیلی بیشتر از آن اندازه که آقای مددی خانوم کتابدار را می خواهد. پس باید اقرار کنم که این خانوم کتابدار همه چیزش خوب است الا سلیقش. این مددی چه دارد که کسی او را بخواهد؟ جوان است که نیست، کچل نیست که هست، خوشصورت است که نیست، بد لباس نیست که هست، خوشصحبت است که نیست، بد برخورد است که هست آقای مددی شرف دارد مادر شرف، او صدها نفر مثل من و اصل را در روزگار سلطان آخر از مرگ نجات داده است او زمانی زندگی من و اصل را می گردند. این خانه را او برای ما دست و پا کرد. در آن روزگار که من در زندان بدکار ترین شکنجهگران تاریخ بودم، تو کجا بودی مادر؟ وقتی استخوان‌های پای را خرد می‌کردند، تو چه خبر داشتی؟ خب، روزه نخان. سر نماز دعایش می‌کنم، شب و روز. خدا حفظش کند. خدا به او بچه‌هایی مثل خودش بدهد. در آدمیتش که حرفی نیست. من ظاهرش را گفتم. خانم کتابدار بهتر از عروس خودم نباشد مثل یک دسته گل است ولی چهل سال هم بیشتر دارد چه بهتر قرار بود ترشی سیر بشود مربای سیر شده مادر چرا مردم را به ظاهرشان قضاوت میکنی؟ این اصل مرا نگاه کن ظاهرش حرف ندارد اما باطنی دارد که فقط خدا میداند هرچه باشد خیلی برای سر تو زیاد است. اصلا در خواب هم می دیدی که همچون الماسی را بدهند به تو آدم نیم نیموجبی یک لاغبای در بدر. مادر، پدر خوبش هم بیست و یک سال پیش عین همین جمله را گفت. جوان، دختر من برای سر تو خیلی زیاد است. جوان ها می خندند. دخترم می گوید، شما چه جواب دادی پدر که پدر بزرگ تسلیم شد؟ اصل از آن اتاق می گوید ما با خاطراتمان زندگی نمی کنیم امروز می گوییم که ما برای هم آفریده شده بودیم همین پسرم می گوید خدا اینها را فقط برای این ساخته است که شعار بدهند تو دوان و مارالگونه به سراچه می آهای مردک بیا اینجا جوابت را بگیر و برو شعار دادن و شعارها را برنامه کار قرار دادن دوای تمام دردهای ماست آنها که شعار نمی‌دهند فقط به خاطر آن است که می‌ترسند که مجبور شوند پای شعارهایشان بمانند و نسبت به شعارهای خود وظیفهمند شوند شعار نمی‌دهند چون وحشت دارند از اینکه نتوانند به شعارهایشان وفادار بمانند و به همین دلیل هم مسخره ما مردم کوچه و بازار شوند هر شعار اخلاقی یک تعهد است نسبت به جهان. بزدلها و معتادان جرأت نمی کنند هیچ تعهدی را نسبت به جهان بپذیرند و به همین علت هم شعار دهندگان را مورد بیحرمتی قرار می‌دهند. یکشب یک شب شبه روشن فکری مستانه و دوستانه به این گیل مرد کوچک گفت مردک این قدر در باب سلامت جسم و روح شعار نده این شعارها همه تناب می شود و به دست و پای خودت میپیچد یک روز میبینی که به کلی از زندگی افتاده ای ناسازگار تمام عیار ای به هر طرف که میخواهی بروی میبینی که راه بسته است چرا که روزگار ما روزگاری نیست که بشود در آن ظرف زندگی را به قدر احتیاج پر کرد و در عین حال سلامت محض هم باقی ماند تو در جامعه زندگی میکنی که بابت نفس کشیدن هم باید باج بدهی اگر بدهی تمام شعارهایت باد هواست اگر ندهی نفس هم نمیگذارند بکشی چه برسد به اینکه قدیس هم بمانی و نفس بکشی پوستت را میکنند و روزی صد بار به گریت می میاندازند حتی وقتی میروی برای بچهات شناسنامه بگیری باید چیزی بدهی تا یک شناسنامه بیغلط به دستت بدهند و الا تا آخر عمر اسم مادر بچهت اصل نیست و شماره شناسنامهش قابل خاندن نیست و زادگاهش تهران نیست تو با این همه داد و بیداد که راه و ادعای تهارت که کرده ای حتی اگر یک روز مطمئن شوی که شعارهایت مثل تارهای چسبناک صد هزار انکبوت به دست و پای زندگیت چسبیده و بخواهی که آنها را پاره کنی و خودت را خلاص. هرگز قادر به این کار نخواهی شد، شرم ساری اجازه نخواهد داد، تظاهر، تفاخر،